روز هجران و شب فرغت یار آخر شد زدم این فال و گذشتختر و کار آخر شد آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود در قدم باد بهار آخر شد شکر ایزد که به اقبال کله گل نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد صبح امی که بودمعتکف پرده قیب گوبرون آی که کار شبتار آخر شد آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد باورم نیست زبد اهدی ایام هنوز قصه, قصه قصه که در دولت یار آخر شد ساغیه لوت نمودی قدهت پرمی با که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد در شما ررچه نیاورد کسی حافظ را شکر کان مهنت بی حد و شما را آخر شد